بیمو بردمون در آدبرار بسکه بسکه بسک کسر مهدا بود مردان لشگر مهدا بسک بیم که بارو بسک دبین بسک کسر آفنا بود مردان لشگر مهدا امورو یکی یکی میشه <تصفح> بول <تصفيق> مجان <تصفيق> چه شده؟ تو مواردو نمیکنی؟ کنی؟ چرا قردتو نمی مندی؟ این تکنمی کشت دارم این با کنم بخورم بکشو بیار پایی چرا مواردو نمی کنی؟ چرا که خوردی آسوم و زکره بود که گفتی؟ خ نگاره می کنی سوار ماشین کی میشین؟ چه میدونم؟ گفتم ماشین یه شککو خاانوم فرستاده دنبالم شک شکو شک سرطنه سرطنش رو ناراحت میشه کجا داری میری؟ اگه اجبارش رو کسرتنه نبود اصبان همراه تو میود میخوام قبل از رفتنت برم با آقا جونه ترفت بزن نه چیزی نگیا آقا جونه ثبانی میشه باید برید گیر میشه خانم زمان و خانمه سرطنه حتما اصبانی میشن یه برای تنگ میشه مهوان طاقت دوری تو ندار مهبانو. مهبانو. از گرفتم حدیه خدا به بیر منی ارزا نم ارزا بعدم بیا تو سخای نکوش بده یاد من بیا برای خودت باخت بسید قربان اتفاق مهمی افتاده شما نمی‌بینی، اتفاق از ملاقات با علا حضرت مهمتر قربان مهرات مهرات خان به رحمت خدا رفتن مسئله نیست من با دربار هم آنگ می نه نه نه نیازی نیست بعد از ملاقات خودم به این موضوع رسیدگی می کنم خوربان اینجا همه معطلن شما بهتر از من می‌دونید که میت نباید روی زمین بمونه چاش قربان آشپزخانه، صبح استارش شد که. حالیه. به کتابهای منو میفروشی یه روز نگام نکویم گرنه دورگو هرمان پیش. بذار بذار کجا کردم؟ بذار بذار. شکایت میکنی خانم؟ میخوانو. ازاد؟ حالا زیر مشتر لگه ده باطل. باطل. توبون میورد. تو زکره کی تو کارشون نباشه؟ مطمئن بین؟ بله آقا. آدم فرسته داموردشون خونه. به یقین جون داده. چه کار میکنن؟ خودشو سر میدونه داغون آقا اول میریم تهران بعد هم یه میریم نه امشب ندیم بهتره اینطور وقایه دنباله داره پی پسله داره امشب تو شهر نبیننم آن فردا چی پیشونه پس یکی وزاده او را. اطراف خونشون. شونه به شونه مهبانو که اگه خواستن تعرضی بکنن مانعشون بشه انجام شده تخصیر من بود آقا جون من بود دختر گرم کسی که از راه به منزل نرسه. از بیره هم نمیرس این قسم آدم تا همه چیز رو به هم نریزن دیزشون نمی‌خواد. آروم نمیگه وقتی تزره و, و تو رو دیدم پریشون شدم ربونم به دروغ چرخید دروخ بافی لازم نبود دخترم میرفتی سنگاتو باش با میکنی گوشش بده کار نبود آقا جون یه حرفای بهش زدم ولی نفسم توش از سر نکرد کسی رو که بابا ننش نتونن تربیت <تص> کنن روزگار بد جوره نبش میکنن آدمی که دوستی زرر داشته باشه همون بهتر که دشمن بمونه نمیدونم دیوار داره به جونم فشار میاره انگار دارن برم یه گناه بزرگ می نویزن نمیتونم باید چی کار کنم یه بند خدایی افتاده بود تای چار بهش گفتن صبر کن رفتن تناب بیارن نجاتت بدی گفت صبر نکنم چی کار کنم نمیتونم بیام آقا جون جونشو نداره نشون ندارم. هندهایت امروز میرسه. کی میرسه؟ شاید تا یه ساعت دیگه. بهروز منتظرش نگران نباش. پشود دخترم. پشود بریم سر خاک می‌چونه؟ دخترم. باید بریم سر خاک دل نگرم واسه چیه؟ قرنگ رفتن که گریه نداره وجودایی از پدرم عادت ندارم میترسم تو نبودم اتفاقی براش بیفتیم تا همیشه نتونم ببخشم خودم میگم مسافر بد در سفر نکنه بتر شکن سرطنه حتما یه چیزی تو جوهره دیده داره تو رو با فروغ نفرسته سفرم برای اگه میلیت به این صفحه نیست بتونم با صورت کنم نه سرفش میتونی؟ خیلی با داشتای من وقت شماره برم خونه هست اون برم قبرستان این چه دیرش رو که زحمت میشه آمینم یه قاطعه همه شما بریم نه بانه حالی شطوره این پیشمومت وقت واسه اون بچه خیلی با داشتای خیلی با شلا که خط بود خیلی إن شاء الله إن شاء الله باشه که تو نباشی میخوام خود به یه عقد بخونم با این قیافه که نمیخوای که خونه تو منو مهرا انتخاب کردی امشب ببینی خیلی خوشد میاد. عشق میکنین. گم کرده دختر دیوونه آبچی، چی؟ چه خبره خوبیت نداره؟ بفرمایید فرقه شو گم کرده. گمش کرده. Thank you. بقای عمر خرشون باشه خیلی کله شق بود خدا بیامردتش رو داشت یا علی خدا بیامرد خدا رحمتش کنه بارش کمتره. خودش بقای عمر خودت و خدایی خود بی جهت شما خانوادتون از سیر خودم کرده گریه تسکین روحه ندیدم گریه کنی کار بعد گریه گذشته خونده ای چاری جز تسلیم در مقابل اتفاقا کش اومده نداریم کار به عوالم سنگینه نمیخوام پشت سر مییت غیبت کنم و دین و اینمونه و گروه بذارم اولین شرط با آفیت زیستن قرار از نادونیه که شما با همچین آدمایی های نشست و برخواست داشتی تنها اشتباط دایی جون گناه هر که سپای خودش بینیمیزن تا اونجا که دیدم و سنجیدم اون خدا بیامرز تو مسلک شما نبود وقتی اشتباه میکنیم جای تحصیح یه قوه نهانی ما رو فرمون میده به پرده پوشیم همون قوه نهانی هزار تا عوض رو میاره بر این که همه چی رو اندازه گردن بخت نامساعد و چرخ نامرد روزگار تو خیلی تر از این حرفا باید اون جوانو از علاقو من به خودت مهم میکرد حسنممم برگردم به مرگ میگیری که به تپ رازی شیم به مورا فرد آمش گفتم افراقا نکرد، اصلا هفت گوشش نمیدم یه دفعه پری رسد بریم اون نامرده هم یهوش گاش و پشششش اشفر بردی کردم من به شما, شما اطلاع دادم خودتو به نفهمی نزن خوب میدونی منظورم, می منظورم چیه پولو بهش دادی کل پولو بهش دادم اام گلدان بعد مسابقه پول بیشتری شده. پس پول گرفت و زیر قولش ز. از نظر من مغصر اصلی این اتفاقی که افتاده توی تو دست مهراد گذاشتی تو دست این مردی که بعدش اندازه خون پدرت پول گرفتی که ماجرا ختم به خیر بشه پس تو کار من نهارم خانوم گور شده پیداش کن چکارش داری خانوم؟ اونم هم تو حرف ستوبا قایم شده پیداش میکنی؟ یا خودت تاوانشو میدی از نظر قانونی؟ قانون برای من مهم نیست دستاپاتو جمع کن و زود بجمع نه تو نه هیچ کسی دیگه شوخی ندارم. خسرو <تصفح> خان امروز دیدم. پاشنه یه درخمتونه اجا تکلیفش روشن کن. پرتجو کردن اکسا که بیشنسنش. همه به درستی و پاک دستیش شهادت دادن. در دل خودم میگه یه جای کار این خانه عاشق پیشه را داره. کوچولو بیا مسیح. پیشو. جلو بشین. رو دیگه یه چه فرصتی به دست نمیده تا حتی مشغول کپن و دخن فامیلشه و به میز و سندبی تازه خون نگرفته باید تا میتونیم این سفارشه مردم ها نادر اینا آقارم پستو ماشینه ویست روشم بنداز که دیده نشین چشم